یا یاربین شمع دل افروز زکاشانه کیست جان ما سوخت بپرسید که جانانه کیست حالیا خانه برانداز دل و دین من است تا در آغوش که می خسبد و هم خانه کیست باده لعل لبش که لب من دور مباد راه روح که و پیمانده پیمانه کیست دولت صحبت آن شمع سعادت پر تو باز پرسید خدا را که به پروانه کیست می هر کسش افسونی و معلوم نشد که دل نازو که او مایل افسانه کیست یاربان شاهوش ماهروخ زهر جبین در یکتای که و گوهر یکدانه کیست گفت ما از دل دیوانه حافظ بی تو زیر لب خند زنان گفت که دیوانه کیست